به نام خدا جلسه بار ما در فلسفه ازدواج و زندگی زناشویی هست البته قبلا هم در این مورد صحبتهایی داشتیم بولی میورهای مشابه کردعنوان فلسفه عشق و آدم هم در این صحبت با تخصصی‌تر به مسائل زناشوی هست سوالا چکی هست اگر می کنید مسئله رو کنید تا بعدا می کنید رستیم سوالا با توی سوالا با نظام کنید بردید، به هستی که سوال داشتم سواله اولم اینه که اصولا ازدواج و زناشویی چه ترسطه برای دیشت که در آن که در آن واحد زیباترین و زشترین باقعه و تجربه زندگی انفان ها و رابطه که کل بدبختی و خوشبختی و سرنوشت هر کسی در آن خورد سوال سال دوم اینه که چرا زناشوی های که بر اساس ازدواج آزادانه و آگاهانه تری انجام می شود عمری کتا دارد و سریع به اون بخص و طلاح می رسد که اصولا به نظر می رسد که از لحاظ تاریخی عمر ازدواج و زندگی زنشویی و خانوادگی در حال به آمدن است این چه واقعی و چه صرفی دارد؟ آیا این به معنای به آمدن عمر تاریخی بشر روی زمین نیست؟ هم تجربه حقلی بشر و هم علوم جدید که درباره تاریخ تمدن ها روانشناسیها فلسفه تاریخ همه اینها نگز مسجل و مسلم کرد که اصلا آنچه که اسمش تاریخ بشر هست کارخانه و روش و محرد گوشش داریمیش به و تشکیل خانواده و اهل زناش میدونه اگر انسان را میگن تنها است که صاحب تاریخ است، صاحب فرهنگ است، صاحب پیوستگی تجربه هست و واقع فرهنگ و تاریخ به وقتی تسلسل و پیوستگی یک جریان و استمرال و همچنین تکامل و تبدیل شد خب انسانی که بقیر دارایی که این وضعیه که هست دیگونه بودون نیست تاریخ نبارن نابرین ارزش تاریخی بودن انسان ولکسن علیت این که انسان مسیرش از سایه جاندران سوا شد و طبیب موضید علا همدی شد و عشق مخدوقات شد و سایده فرهنگ و دانش و تکنولوژی و ادبیات و مذهب و شد همه اینها ها خاطر این بود که یک جنس نر با جنس ماده از بشر قهر بست عنوان ازدواج و تصمی گرفت که تا آخرون با همگی نیزه نیگه و تشکیل این هسته اولیه مدنیت و با همین واقعه با اصلی و انسان ساحل جانداران مسیح سرگوشتش و محالیتش کرد. چون رابطه جنسی و خب همه این مسئله ازدواج احض بستن این در که در هم تا اول کنند و در همه امور با و متحد به همینی باشند که خب این که سوال می که به نظر می که درست جدید ازدفار در حال اندراز هست درستان ها روی درویز از ازدفار بطن تشکیل خانواد کوریزان تر این به این مناست که این نسل بشر می خود درسته ولی در حال هم این طوری خب ببینید از دیگلاس شاید به این مناست که نسل بشر برمی ولی به این معناست که تاریخ بشر به پاید تاریخ تمدن به پاریان بریسه ولی از یک لحاظ چون بشر در مسیر ساختاری تاریخی خودش در اساس زدواش بیدو شده دوچار پدیده شده مثل صنعت تکنولوژی به خیلی مطابقه بردمیسته که این رو پایناسیدان تاریخ برای انسان به مسابقه به پایناسیدان درحی اصلا ممولیقی برگوی زمینه این بشر با این تیلی که جرده اگر مدنیتش مانقلید بشه بر اساس اندراز ازدواج به منانی که دو میتونه برگرد که سه هیوانات در جنگ ردندیم کنه و زندگی جانوری خود داشته باشه مثل میمون ها در جنگ نه منظر میبسه که انسان دیگه نمیتونه برگرد بسیاره هیچ چیزی بابیش با دیگه نیست و در این لحاظ خب می که باش فقط به نظر میبسه که اندراز ازدواج وا تمدن و فرهنگ و انسانیت نیست بلکه محبوب اندرازی هستن عمر تاریخی موجودی به همه بچه دارویزی بکنند در بوله این, این مطلبه که ازدواج اساس تمدن و اصده مرکبی مدنیت و فرهنگ و انسانیت و مذهب و همه چیز هست ما در این باره در کتاب ها و در واسال دیگر و همین کابی زوقت کردیم این و این صحبت نمی این بسیار مهم متاسی خانه برخی از جانبشین آسان قرم این مسئله رو بیر رسیدن ولی دیگه این به این اهمیت فیلیگی نشد حتی از بایدانسانی نشد و به بودتی فرامی کسی برده اینکه حتی دانش و تکنولوژی باشه که این به های مدنی بشر هست اونی ما قبل صحبت کردیم من نشون داریم که این حاصل ازدواج و زندگی خانوادگی بوده بخاطر مسائلی که در این زندگی خانوادگی و ازدواج پیش بشر نیازمند این شده که به دانش های جدید برسه، به تولید های جدید برسه و به های جدید برسه و مصرف های جدید براشدی بیان بخاطر میاز ها و مسائل درست یا ندرستی که در که زناشویی پلید آمد انسان به فکر رفت فکر شد همه بایدینی همه بایدونیوی به دونی دستی ها تکنونوژی ها و هنرهای دستی همچنین مذهب یکی از شده های بشری بود که در ضروری زناشویی دو سال یک بیدارهی و نقصان عظیمی شد که نیازمند مذهب شد بنابراین پیداویش شریعت ها و دین نیست محلول و محصول استفاد و تشکیه خانده هست اون میخواه اما رمایت های دیگه مبینه تشخیص میدیم هم در تدوری مسئله در کنم که واقعا نمیدونه که ما در واران در سالی کتر ممتده از مایم داستان داریم داستان که در اون بهشت خیلی با جانوالی خودشون بودن در اونجا مثل تا دو دیگه می و یک مشکلی در اونجا خان اون دوران اون در از گفت دوران ما قبل از سالی هم یک حیوان مثل صحیح هیوان بود, بود. در مثلا پیچکی های خاص از زمانی که اون رانده شد و در تاریخ خواست شدند آنجا این یکی اشت رانده شد قرآن شاید هستیم که اصلا ایلت خروج آدم بهش مشکلی بود که آدم با با دا گردند ایلت خمویجون هم مشکلی با بعد از خروجشان در دوران سرگردانی به داخره با هم دیگه کردند کردن و این آقا دیتا شده دین و قادم و نوبست نسید وقتی شد که آدم ها خارج بهشت خواهید دوران تمام بشه دین تازه شده این دین در واقع برای این پیدا شد انسان یادمانی به شد که از بهشت خارج شده بود و نگه مجبور بود که اززواج کنه و مساحد بشه به هم دیگه و تشکیل خانه بده تشکیل زندگی اینو ما در قرآن هم شده و این مذهب هم حاصل رابطه آدم و حاصل زندگی دناشمهی و تشکیل خانواده هست خب بالله تاریخی کار نداریم در همون زندگی جاری و تقدیگی بشاری این وجود ما میرونیم معنوییت و دین هم تا زمانی که انسان ازدواج نکرده یا وجود نداره که بزرگ داره بسیار چیز ستی و بشری و شعاری است واقعا چیز جدی نیست این خود معنوییت و اخلاق و حقوق ما میدونیم که از زمانی که ازدواج میکنه یه باشه باشه باشه مستقی میشه اصلا باشه کنوی ازدواج برای اولین بار دختر بسری سندی رو امیزان میکنن خالقانی جمع میشن، متعهد به میشن از خدا میگن. اصلاً تعاقد دیگه؟ درست؟ نه میشه و در که نیاز پیدا باشه. ولی همین که در خود دین و خدا خود در اسلام زواج از ده همه واژه که به عنوان اسلامی فرموده زواج صنعت منی، صنعت منی یا دین منی. پس داشتن که تا بتوانی دینی خیلی خب این هم یکی از درواید این عربیت هست که قبودین هم برای آمده رابطه ی آدم همویی درمی زن ها شوید همچه نیسایب خب ما میبینیم حتی علاق اقلانی هم انسان تا قبل ازدواج چقدر کودکانه فکر میکنه چقدر ساده است چون باید ازدواجی که زن تازفت میشن و به جدیعی در فکر رو تعقل میرسن پیچیده میشه افکارشان رفتارشون. چهر جنبه مثبت چهر جنبه منفی، چهر جنبه هفتالبی، چهر جنبه مکرو بزر و تبرکاری همین با ازدواج هستن به دارشن ولی هر اینومد که ازدواج نمی نکردن نگردن پس سال هم دانش هم بیندوزن این که اینا چقدر از سطحی و بیویشه از نفاق برد دانه ایشون چقدر از سطحی دین هم اگه دارن چقدر از سطحی در این بردیس خب از این بحثی کنیدی که حاله کشیم در حاضر بحثی که زن و مرد به تنهایی نصف یک ممیمه بود بسنستن. نیمی از موجود دستند و هر کت اینگار در عمر خودش در صدوی نیمی دیگری از موجود خودش در هست در صدوی گموشده این حسابه ذاتی در انسان هست انسان همیشه که هم تو تا در خودش هست با حس میکنه ناظر ثبت نیست یا نیست در موجود این نیاد ذاتی منشای نیاد انسان به ازدواش این در زن بنویی هست در مرد بنویی هست بلا همینه که ما از در خود روانشناسی جدید هم ما میبینی که بخش اعظم و بسیار مهمی از روانشناسی حمومیت و شخصیت مرگوی دوران بنو میشه به تجربه ما شاهد هستیم که دختر بستنی که دوران بنو وارد میشن با دوچار چه بحران و دوچار چه خلق میشن بسیار پریشان میشن بسیار ضرون خود میرن رفتارهای دهنجار پیدا میکنن بسیار زرن میشن و بسیاری از ویژگیهایی که همه مجموعین ها در دوران بزو پیدا میشه در یک کلام میشه گفت اسمش اینه که به با احساس میکنن که یک چیز کم بغن تا قبل دوران بزو چنی احساس نیست دوران کودکی و است، و اون یک دوران طرفه میشه گفت وفت گروه در بشه این درز بگید پس از اساس ازدواش یک نیاز غریبی که ذاتی در انسان ناسته و اونم نیاز به چیزی گمو شده در خود خود خب این نیاز در مرد به صورت اینه که احساس منه که چیزی رو گم کرده و بایستی این گمو شده رو بیاهه و با هم در موضوع یک زن بسید یک دختر جوان بالغ هم که این اصافی داره اونتا زادی چه این اصافی را ای این داره اصافی بریگ کاملا دختر جوان بالغ هم که این رو داره یک گمگشتگی ببین مرد اصاف ما نیش رو گم کرده و اون رو در یک زن ولی زن اصخاص میکنه که خودش گمه. گم شده. و یکی بس به پیدا کنه. اون رو فرندک معرفت نبس هر تختر فسای جگانی که آمازه میتونه این, این یکی از مسائلی تلیدی خستشناسی در همه ازدباه شده. این مسئله گم شده زن اصخاص میکنه که خودش گمه. گم شده. یک گوهر پنهان و مخبیه یک چیز عظیم در خودش هست و خودش دستش بهش نمیریسه یکی برای که اون رو پیدا کنه براش و اون رو خودش بده مرد این رو میشه دیگری مرد در واقع میره یکی پیدا کنه و در زن پیدا میکنه و درواقع زن در واقع خودش موجوده یکی اون رو پیدا کنه دستایی مرد اینطور نیست برای این بعض مطال تباقویت بسیار ز همین قضیه گم کردگی و گم شدگی در واقع مرد دشار گم کردگیه دشار گم شدگی و خود همین اساس قم پدیگه یکیز پرشک پرشک پرشک با بر اساس گم و گم شدگی پرشک پرشک با یک ساتی و کاملا محرستی یعنی ارفانی صحبت این قوم شدیدی مرمود باید باید شناخت میشه مرمود باید خودشناسی میشه از یک لحظ مرد احساس مونه که بایدی که پیدا کنه تا او تا بتونه این قوم شداش رو بهش بده باید زن ای ای که یکی بیا سراغ برون اما تا او پیدا کنه برای همین مرد بره مرد سراغ زن میشهد تا یکی این مسئله مسئله فرهنگی و قراردادی و ارفی و شرکی اینها نیست خیلی افزداری نفت بود این ذاتیه فرهنگ و تربیت و آموزه های دیوی و سنتی نمیشه این دیوی که میگرمیشه مرد این ذاتی این به هیچ مصفر و ملیتهایت نمیشه این ذاتی چیزا نمیشه در سفقه که در کاشفه و در بود مزن مکشوده و همین در قرار ما که مرس و مزن مفعوله خب این مسئله در که همین مسئله ذاتی ستها موزده رو و مسئله رو در با بازناشویه میتونیم تدریم کنیم و ما رو به که کدوم ایک از مرسال دراشوی و حق و افید ذاتی و بلندی هستند کدومش قراردادی کدومش و راستی کدومش حق کدومش ناحق هستند، یا و این یک اسیز بلندی و نهاده زاهی و بسیار از این قراردادها قرارداد ها و قوانده فرمکی همین ذات، همین معنا که اصاس ازدواج میشه، اساس عشق زنوشویی میشه در همون چیزی است که ما در فرنگستانی اسمشو میزاییم ودایت زنوشویی چه؟ این در زنوشویی احواسته این نیجا ودایتی دیگه برای میدونم که در موسیقی زنوشویی ادایت متقابلی یا که ودایت کنی بعضی خیاف درمونم که مثلا میگیم یه ودایت میگه آخا یا ین یک این ش ینو فکر مرضسالای که لف نده این ولایت متقابل ولایت مرد بر یک ولایت ظاهری و دنیوی است و ی ولایت زن بر مرد یک ولایت باهنی و غلبی است ع و ل ی واقع دمدارها ین این هم زاتی قرارب نیست در همه جا این قانون بودتان آتوماتیک در شوهرهایی که هنوز سلامت دانن این حوالی داره و عمل می کنه این زن خواهش دوست داره که در عمول دنیاوی شوهر تصمی بگیه و تا فرمان شوهرش باشه این دوست اصلا واقع و این دوست داره زن میگه سالون باشه، دوچار امراضی که در اینکه نشده باشه این اصلا حاصل باشه بده در ببینیم زندگانی برای نه مرد هم دوست داری این فرمان رو براساس ولایتی که زنش داره اینجوری فرمان بده زن هم بر مرد ولایت باطنی و غربی داره ب همین مرد دوست داره که تصمیم بگیره و کارهایی بکنه که مارد هم باشه در واقع می این ولایت خو اصلش محبت مفهوم یش محبت مفهوم دیگرش در گفت میشو وفت حاکمیت مرد بر زن ظاهری و دنیوی مربوط به حقوق و روانین ما ایشاسی اجتماعی و خصوصیاتی میشه و دیدنای ات زن بر مرد قلبی بوده و گفتن هانی ما مالی دیدنی میشه زن بر مرد آه هرگز در جامعه دیدنی نمیشه همیشه غراید در پشت درهای های باستان در چال تیبالی خان هست فقط زن و مرد هنگامی وانکه میخویم مرد دیدنی با چال تی زن بر قلب او در یه ثرمانی داریم آه این و به سمت ما ایشاست باشه مرد نزدیک بزید پیش واقعی و متقابل باشه خب متقابل با اساسه که در عمل و دیدگان پدید به و مینا شود در کلام میشه گفت که ورمومد در ازدواج هر در دستویلی معنی خودش هست در سرک موقعه در, در اون احساس گمکردگی و گموکردگی که گفتیم در دوران گلوه پیدا میشه دکلاد اینه که بنابا هر کسی احساس میکنه که خودش تنی بیشی نیست ماده است و به ناقا احساب اصلا برای چی نموزی می کنید معنیش در این دردیدی چیه برای این امیلیسترین و جدیدرین ساالهای محنوی و واقعا ایرفانی در دوران بلوخ در دختر و سلوی که این در واکنش برای ازدواج, ازدواج خودنمایی می کنید ازدواج در واقع می شکنید تلاشیست اما امیترین تلاش برای به این ساالهاست پس هر کسی معنای طرف مقابلش خطاب میشه یعنی زن معنای وجود خودش رو در مرد جستجو می‌کنه مرد هم معنای وجود خودش رو در زن جستجو می‌کنه هر کسی در خودش به خودی خودش می‌بینه که ماده مذه تنی محض این معنا همون در حقیقت میشه گفت آخرته همون هر حرکت همون روح و روحانیت خودش همون ذات خودش رو داره برقرار و در این زدید که چقدر ازدواج واقعی تا این حد سرنویستازه ولی خوب مهمترین و اساسیترین تلاش برای یافتن معنای خیشتن هستی و گوهره زاد خیشتن و جاوزانیکی خیشتن و از اینجا ببینیم که زباش دارای زادی کاملا معنوی و دینیست و روحانیست کاملا بازنیم به همین داری در مستر الزباش ثابته که در بین سفر میاد و این اشقه ای که از آلی ترین باید که ترین و که به در زنومت پیدا میشه و هر از آمیدیش تجربه می کنه اشق اشقه به معنا و ذات خوشتن اشقه به حقیزتی موجود خشتن. اشقه به یافتنی دلیل زیستن و بودن فهم و دریافته اصلاً به دنیا آمدن و در دوار، فاید عمل انسان. بس طبیعیه که سرونش ساسده و مهمترین واقعیت دیگر باشه و اگر معفل و نباشه، واقعی بدبختی بشه و اگر معفل باشه، واقعی خوشبختی این اگر هر کتی بدبختی و خوشبختی خود ازباری این اینه واقع واقعی درست هم هست. نشنام مثل بخت به دو از خوشبختی و بدبختی در همه این فرهنگاه بر میگرده به بودات ازدواج و سردویش اعتباش را برمیده یعنی هیچ از در فرس اون اقتصادی، علمی، فلسفی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی در اونجا چه محفظ و چه محفظ در اونجا به احساس خوشبختی و بدبختی جواب دست نگیده احساس اون خوشبختی را د انزواجی که خودشون داشته بیده این لدش هم درسته. بایده و باقرم درسته خب درسته. حالا این اقضای بایده جزیاد بشین خب وقتی که یک خاصدادی صورت میگیره یک مذاکره صحبتی برای ازدواج و زناشویی صورت میگیره خب ما بهتر آزدرد میکنیم که چه مسائل اونجا در درسته چه مسائل ندرسته چه قرارمدار هایی به حقه چه قرارمدار هایی لاحقه به با معایز گمراهی میشه و که بینید از سوال شما این بود که به نظر که در جدید که از آزادی و استقلال و انتخاب و اخیار هست و زنها بر اولین بار اونها به ظاهر این طبانه بدا کردن که با آزادی بیشتری هم انتخاب کنند و اکثر از سر ها با مدت ها مذاکره و دوستی و مشاهده و تجربه صورت میگیره و زنگی برای شناخت تجربی بدست دست میاد با این حال، نظر میسته که ازباچه های این روز مستحکمتر خوشبختتر و با و مهموستر از, از ازباچه های, های سنت باشه حالا نتیجه کاملا برعکس تا جایی که اصلا به اندراز نیستی بشریت در سمت ازدواج و اندراز نسل خوب این هم خب ببینید در ازدواج های مدرل که بر اساس دوستی ها حسولا صورت میگره به آشنای قبلی اساس انتخاب همسر هست ما ببینید اصولاً چه چیز ملاک انتخاب است خب یک سری اشتراکات و آن چیزی که گفته میشه تباهمات هستش یه میزانی که وضوح مشترک قرق و مشترک آرزوها و احمدیال و سمانه مشترک و نیز شرایط اقتصادی فرنگ اجتماعی مشترک به هم که میبینن بردار میسه که خوب این ازواج است خوب و موفق یه همچی باشه بازا که با اینکه ازواج های اصل از جدید بر اشتراکات و صفاهماتی بسیار بیشتری صورت میگیره حاصل کاملا محفوظت رو در در من با همین به ما کم و بیش در کنیم چرا؟ خب ببین؟ مگر نگفتیم هر کنی در معنای محنه خودش خود خودشه در جسدوی حقیقت مطلقه خودشه هر یه گویی هر کنی در جسدوی خدای خودشه واقع هم خب این اشتراکات مادی صدیقهی، فکری، یودوزوکی، نجاتی، ملیتی، طبقاتی خب واقعاً چرا رفتی به این گمشورده داره؟ چه کمشی میتونه بکنه به این گمشورده؟ واقعاً نیتونه بکنه؟ یا ما بکنه چه رفتی داره؟ اگر اون گمشورده، یک چیزی فکر که ترکیم فقط میدونه که چیزی رو گم گردن امزور خدا باز و این اشتراکات هیچ کمک نمیتونه به این در جهت یافتن اونگوم شده کنم اتفاقا نتیجهش به تجربه منتونه که نتیجهش کاملا برحقه و اتفاقا اشد تزادها و جنگهای زناشویی و اساس اشتراکاتشون اتفاق میافته مثلا وقتی ایزم امنی حراساشون و یه اداره همکار هستن ما شاریدیم که بخشنجمی از تضادهاشون و باسطه اشتراک باریشونه اشتراک علمی, من. علمی مثل. دو تا مثلا دوتا مثلا پیزشکن یا دوتا نمیدون کارمند نهراتاشونه اتفاقا این اشتراکات باعث تداتا و جدایی ها میشه یا مثلا برای همین مثلا ازباچه های نژادی نجادی معمولا ازباچه های موافقی نیستن عموما ازباچ در خالی از نژاد هرچی از طبقه و نژاد دوسته باشه است و دین ما هم بگیه هم سفارش کرده این ما به تجربه میداریم این هست اشتراکات باشه ما میدونیم مثلا این دو باشه های نجادی بخش عادی از تضاد و جنگ در هر برای حاصل موزلات مشتریک نجادی اونهاست این نیچه دو روزهی بس واضعه که این اشتراکات بارث تضاد بشه و اون حدث اصلی ازدواج سطح شاید ازدادی قرار میگیره و اصلا فراموش بشه و اصلا مجالی برای حرکت به سوی این گم شده و حرکت برای کشف این معنی رو بودید هرگز در این نوع ازدواج ها اصلا پینایش نداشته باشده ببینید اندیکلا ازدواج و معنی ما گفتیم که حرکتی احساس میکنه که این ایمهی دیگری از خودش رو گم کرد نداره و این روزه همسر خودش رو تا وقتی گر بانیمی دیگر خودش نمیخواد دستور داده شه تا تابی به موجودی کامل و یگانه بشه. به خب این موضوع. خوب میگم ما در قرآن سری دری بسیار سری توبی، این سری یگانی، سری اخلاق، سری اخلاق این سری دوستی، سری دوستی یگانی، سری توبی. خدای الله عزت الله استاد. دنبالت بدانی ولاد دنبال میگم داروکو فرموند. این تا وقتی سری دستوره. یعنی این صورت ما چه ورده؟ چون مثلا با چارت میشه آورد. با قاعده عادیه. چون یعنی همچون یکی حاصله. یعنی همین مثال دیگه. شما یعنی بیمیور دی. لازم هر بدر یعنی ناز و داده گجا مدن وارد شدن. یعنی بی علت و همین ها مطرق و یگانگی رو داره مخاطر قرار سه بلا می رو کنه. و بی این در واقع سری از باز روز که سوری رسیدن به سال به, به یگانگی برای اتساس این عزیزشوه این عزشان تماما یه در که در فرهنگ جدید ما سکر میکنید بلا می کنید رو گفتونه شده اید. ما رو اینسون خود خداست. حق هم انسان خود خداست. خود خداست. انسان خود دینه. روح انسان است رو. پس اون انزه با چای بار اساسه. شبحا و وهمسانیا هست. طبیعتاً زِد زِدانی انسان به ایوانیکی. یعنی به رسال با خیشتنش ده هستند. انسان با خودش در همسانیش به رسال می‌رسه. به ایوانیکی می‌رسه. به حقش به اون جاودانگی با معنای خودش به ذات با خدا رو بی حضرت و بی معلوم بودن بی پس و پیش بودن این ازباچ که ازباست از راست ملتون معلوم به صلاح منطقی و خیلی علمی برگزار میشه مخصوصا ازباچ های هستهی روشن فکری ها و ازباچ های هستهی تحصیل کردگی ها و این ها در واقع را میدونی که خیلی سریعتر سر از اززواش های عرفی و عمی بوم بسیدن ازلتش اینه که موانه یکی رایی بزنی بساق خیلی زیاده این که یکی به سور کنیم علمیه نمه شما بایدونم علت اززواش های عدیتی بخونی بخونی و کیلوی و مذنهی و حساب کتابی و چودکهی درست. اینم هم جای تنبیه واتین شورای شورای در همه مسائل بشری استاف از قدرت در مسئله مصری استفاده خب و ببین سمدیت ها، بیا بی ببین بنیازی اظهار می‌نیاز که به نیازهای مادی کمتری دارن اینها موفقترند در اتباع و در بسانه با هم دیگه و در درش قلبی در دوستی با دیمه حفظ دارد به مثال که مرد مثلا فرص یا زن هر کنونشون من اصلاحی که حساب کتاب هایی که نیا سال بوده رفتن کترو و همه هم حساب کتاب هاشون بانه و یکی با خاطر مدرای که اون بود، یکی واسه خوشگلی، سکسی بود، یکی واسه یکی شرایط اجتماعی و قبایتی رو اقتصادی و نجاتیش بود، مقابلو که بتونه یه دنیاویش دنیوی واسه خوبه که خوب باشه مادیش رو ما تو برای نفاس‌های нюанس‌های مادی فداقرزه و وقتی اون ما که در هم روزهای اول اینا به تشنجن درام شکست میشه. همشون میگن یه نهش گاز خورده می‌ده برای باخت درسته؟ نیاز برایش نیازی داریم نیست، ولی این به میزانی که درک میشه چیست که صحبتی که از ما کردیم اون نیاز داریم. نیازی انسان در که یه حکم آنایی باشه، و خدا آیا باشه. ولی این نیازی به نیاز به ایلانی و بسازی. در نیاز انسان به کشتار خودش، در, در ازدواج، توافیم خود به خودش برسه منطقه در محصرش خیلی بازه ازدواج یعنی خلاش ازادتی انسان برای رسیدن میخیشتان پیش یعنی یگانگی با خیشه انسان موجودیست نسبه بکاره یا موجودیست و دو دیگر دوانه انسان در ازدواج نخواد به خودش برسه با خودش به یقانگی برسه به میزانی که در این رابطه اون نیازا و حساب قداب های مادی دخیل هست این راه معنا و معنویت را نمکن و سخت میکنه و جنب آخواست میشه و بغیران صورت مسئله ازباش برای میکنون که صورت مسئله ازباش تا میکنون که افتیم کمکنگی و گمشدگی معنوی برای میکنون سورت مسئله ازباش خب تا شد که چرا از که از تفاهمات و اشتراکات و مذاکرات و دوستی های قبل ازباش هست ناکمکنین ها بیشترین طلاق ها در این راوزها در واقع دیگه هست بایستیم خود ازاس ازدواج باگه هم بیتر به همیختر میشون مساعده نشبی اگه بخواییم دیست کنیم هزاران ساعد به هر فرمیش ساعد هستی جواب های دا. ما از تا تا تا تا جواب میدن ما میریم این جواب ها چی خاصی رای نداره ازداش این اینکه اصلی واقع چناختونش و مرتصبانه به نورده چیزی صحبت رو میشه از دیکنه بایسته گفتش که زناشوی همدیستی آب و عتش همدیستی دوتا زد داره همه زناشوی بایسته گفتش که جنگ پیفایان و بلاوقت است. در حقیقت جدیترین جنگ که بشه هسته گرانشوی همه جنگ های برونی جنگ های فرنگ عقیدتی، گلوژیکی، جنگی بابایین قدرت ها جنگ اقتصادی، نبار طبقاتی همه اینا بحث رو ستی برین و دیشت و شوکی در این جنگ بحث و تازه همه اونا محلول جنگ در این هم برندر منده کلیزتی است که متصدیقان تالا دهت نشد اگر نوزون مدنیت، پیدایش جوامه و طبقات و گروه سرهنگ ها، ایدولوژی ها، مذاهب، دانش همه این حاصل ازدواج و زنانشوی است خب. پس معلول زنانشوی همه جنگ های بیرونی صورت بیرونی جنگ زنانشوی پس هسته مرکزی و چاشنی همه جنگ ها در خانه هاست بین زنانشو ها هست برای اینکه ریست زنسورباندیه تحییره ریسته بین مود و نبوده هم ریستی مود و نبوده این هیچ شعار فلسفی نیست این عین است. وقتی نگیم جمس مخالف این فقط الان سخت نیست این واقعا مخالفه یعنی این دوتا موجود در تمامیت ارکان هستی خودشون زده هم دیگرن. مخالف هم دیگرند این دوتا مخالف ها بورستی با هم عهد بگندم که تا آخر با هم زندگی کنن با هم نکنن با هم متعهد باشن همه کاراشون با هم دیگه و سادهانه با در صحب انجام بدن در واقع مثل دو تا دشمن ذاتی با هم متعهد میشن که با هم دوستی کنن دشمنی هم. این واقعه بگر فهم نشه مسائل دناشوی و اصلا در واقع تمدن بشانی و مسائل پیچیده این تمدن اصلاً گرسی نشده میشه بیشن یادی نشده جنگ بینید بودونم این واقعیده وقتی میگیم در ازدواج هر که در جستجوی معنی های شده و ذات خودشه در واقع در جستجوی خدا خودشه برای انسان خدا کیه؟ یک موجودیه که گویا در خارج از عالم حسی قرار داره یک موجودیه که قرار مده نابضی نشده و ی خدا به نامی که من بشارم مثل خدا هر برای میسته نوودی وراستی بنا همین ما تا گیره ما ما میگیم که منظور تو چیزی که نابودی فانیه انسان وقتی بودی فانیه ولی خدا بره میشه یعنی وقتی ذات ASCII خودش را داره و خودش رو دیر پا داره. و نابود کنه تا خدا پیداش بشه باشه تا اون معنا اون جاودانگی دوباره پیدا بشه این یک معنای نیست واقع عملی و تجربی این واقعه در زناشوید برای همین زناشویدی عمل اولی دین برای همین الف احکام اخلاق و شریعت تماما تمومن برای اصلاح زناشوید هدیدی شده اولین احکام دین محرمات واجبات مستحب، و همه اینا بر اساس احوابت زناشویدی بگذاشته شریعت موجود زناشویدی مدنیت اخلاق و همه چیز مورید زناشویدی این یک بایدیست که با یک تحقیق و سفرکور واضح میشه که همه چیز سر در زندگی زناشویی داره درست به همین دردیگران قرار زناشویی امقرار زناشویی و نامودی را شکر کرده از که زناشویی قلم رو به تجربی و عملکرد فستو گفتی وحثت عشد ازاد شبیه تنی زده این با همینگر عرض هم بعد با خداوند شرکتنی زده دین رو به اشد نیاد به همدیگه رسونده تا به همدیگه به سوز برسند در حیرت بس کنم انسان و اخلاص انسان و مقام توجید در جنوبانه تجربی و جهادش عمل و عملیاتش در زناشویی اتفاق برسن. در واقع میشه با خداعشناسی عمل و تجربی در زناشوییی زناشوی ایگه ما وقیه خدا و خداشناسی های خیانی خدا که رفتی با خدا خداشناسی هم نداره حالا بهتر میفنید چرا به آن برای اسلام که ازدواج سندتی من هست سندتی من هست نهید دین من است این اصل دین من هست اهمیتی به انفرس هم برای ازدواجبایی بود در هیچ دین پیدا میشه این شده بنابراین اگر درک کنیم که زن و شوهر از دیگرات کسی مثل بود و نبود هست کمتنی خواستیت این ادراف به ما کمک میکنه که مسائل زن و شوهر جدیبی دیدیم و ستیر و, و همیختر باشیم درش تفکر کنیم جدیتر و سبورسر باشیم در واقع واس گفت آنچی که سب گفته می که محور و اساس دین و دینداری و تقوای انسانه سعلش عملش در زمانش بیمه میشه سبر بر همسر اینه صبر بر خداست و مرکزی طبقه هست طبقه همی خیشتن بودیم خیشتن بودیم در همسر صبر در نورت همسر گدشت و در حده همسر علم روی عملی دین حتی عرفان عملی بستر عملیش اینه موقعی عرفانها و خدا و خدا شما سیاره خیالی. تفنیلی و باید چه ایست هرکر که در که یا بهش میره و جهنم با باید معلوم از یه لحاف سردنی درده دردی در به باز میشه این واقعیت رو همین حس میکنیم و درد میکنیم و باز که هم باید پس در هرکتی دراز به همسرش اونگی رویشتی با خدای خودش شد من با اون به افتاد تا به خودش رسیده باشه تا به به جاوزان خودش باشه در واقع است که به ازدواج نیاز به نجات اصلا نجات در نابودی ولی از دیگر انسان از ترس نابودیه که میره ازدواج بکنه این رو انسان اگر در این امید مشه این رو میبینه این مخای این در عوام هر این طور قریبی این نیاز حضور داره و عمل می‌کنه یعنی نیاز برای ازدواج و عشقی در این را وقتی که تمام قدرت می‌روز ترکه این رو بسیش میکنه این عشق برای نجات خوشتن از نامفلتیه داره و خیلی عقیبه هر کسی می‌خواد نجات خودش و جامعه‌دارگی خودش از دیگری به نامده. و خودش در خودش به تنهایی اصاز کابوت رو انسان هم. انسان، آنکه انسانیت انسانه، معنا و معنیت انسانه، چه و انسانه به انسانی در رابطه است انسان معندی رابطه شد انسان خودش به خودی خود،, خود, خود, خود و یک جانبر دیوان و وحشی، و خطر تقیم به جانبر همه چیز در رابطه است و شرید تقیم و انیخت تقیم رابطه ها هم رابطه که ازن و زناشوید کسی که به این را بهتن در مندواج نمی کنه در واقعی حسانی و حسان به آقا نخواهی اسمت برد که هیچ تجربه یک از مزیگی با خودش کسی که حسانی و شدیدتریم معرفت نفس و خودشناسی و خوداشناسی چیزی ترینشن اختار در روابط روخ میده روابط انسان ما با هم دیگه کمیترین و چیزی ترین و برمجوری ترینش ازدباه شده که هر کسی در دیگری هست جاوزانی خوش روسته این بس شبیدترین نیاز نیادی به جاوزانی که خوب ولی این شبیدترین نیاز با رهدات شبیدترین تضاد برای خوشه ما اطلاع دوانشناسی هم میدونیم منظارد اخلاقی هم بروقل زنان شوهر اینکه برای اشتراکات و تفاهمات مادی و فرمودی و بیادی و اقتصادی و طبع مکرد باش وقتی که این از داره میشوند بنابرای احساس که هنگر احساس میخوند که عملیه افتاد و خدا اشتراکته و فریق و بشقیان از این جزه اصول ذاتی و حمولیه همه احساسها احساس ها در همه اصول میداره شد به همینید به من میداره چه غلطی که با این فرم زراش کردن و اصلاً اصلاً چه غلطی که زراش کردن سبب برای این که اره او که اشتراکات بود قلب هم بود در اون من که اون می دونه نداره که همه مثل آبا این که زنش ما این اینکه رونی خواهیم. خب می‌دونه یه مری دیگه خواسته پدیده. بعضی می‌دونه که باید. بعضی می‌دونه که از خواسته خودش میگذاره و به خواسته زنشان درگیره. و وقتی که با خواسته زنشان میده و خواسته زنشون تا می‌باخسته خودش می‌خونه. بعضیان می‌گه دان مواد دوباره معلقه. اینی ما هستیم با خود، حتی این خواسته خواسته دوم باشه، دان دوباره معلقه می‌مونه. درسته. دان هر کاری بخونیم برای ما که اتفاقی فرا این زده من از واقعی و کاملا تجربی. اگر این فهم نشد علاقه ها که شما چیزی از زناشوی فهم نشده اصلا انسان بوزنه انسان در جهان فهم نشده تضاد چه تضاد چه تضادیست برای همینه که ما سوی توفیل رو بازدم دیم یه سمتیه نیازی از هم دیگر گیر میشن و مثلا بنیاد میکنن اینا تازه میسنن یواش خود خاصی میشن باید از دست برن ما میگیم تمام جنگ های روز تفاوت هستن طبقات از نیاز هستی که که از این توقعات میگن در واقع با این دیدگاه اینترنتی میشن یعنی دو تا احساس از خواست خودش میکنه در واقع داره میشه به دیگری یعنی به معنا و حق خودش با تغییر پردازی میشه که فرقا و خیشتندگی میشه و س کشه میکنه در واقع س بود او حق درآشورو داره میابه و در این رابطه و و با با داره به معنا و حقیقت و معرفت داره میریسه و به خدا خودش ار نزدیک میشه د حقیقت در واقع به خودش ا میشه این ان که انسان خاستهای خودش میگذره در رابطه در واقع خاستههای دنیوی ها همه نا دت میشن بذات خودش داره واقع اره میرسه که ا رآش ذشت میکنه این انسان زرن اینه. انسان من هستی که حالات مباغی فلسفی که اصل خودش خودی تدوی داره و توه وقتی گذاشت نمی‌مونه. همه دنیاییت، همه دنیا یعنی همه تماشابنده، این انسان در واقع است، تماشابندگی و نابودی و نیستی خودش داره می‌گذره. وقتی انسانی غنیمت باشه، و به هستی خودش می‌رسه، ولی گذشته واشیتن باعث مطلق و بجا وجود اون میشه. یک زنی بر ذات خودشه، فهمید. انسان با از خودش، خودشه، خودش به گوزنگی از خواهدش میزده به مجود و بقای جاوزانه خودش در خود میرسه در رابطه واکی در خواهد همسانش خب بنابراین ما میبینیم که خوشتندانی طبعا و این سال و گذشته از خواستها تنها و تنها روش و راهی که ذات به هدف دنافیمی رو و این زده رو با همونگی به تدریج به و مستیم. این درمه بهش نانوشوییست یه میتونم که هر خودش با میکنه می‌کنه. کنه سواقش رو حق درماشویی رو درک نکرده و یه درماشویی در این باست در درم جهننه که برای این اگر ما عشق و درک عشق تجربه معلوم شده که انسان به فردی جادوی و ناخداگاه همواره عاشق زدی میشه، عاشق زد خودش میشه برای همین هم که شدیدترین عشقه ها رو ما تاریکی ما میبینیم این بده زن و اتفاق میفته که این ها لازه مساعد همتر ایش بالی و همیگه ندارم با که ضدن و اینجا بیشتری انیختری عشقا رو خوده اما در, حتی در عدبیات عاشقان و عرفانی ما این رو همشه شاهدیم عشق نمیدونم فران مرد که دار به نمیدونم یک شازازه روست این نوع عشقا عشق یا مثلا داستان معروف شخ سنان در منطوق تیر بست خوند عشق یک عالف فقی در مقام بسیار عالی یک دختره که ترسای کافره از خانواده کاملا فاسق و فاجر و شرافروش و حتی زناکار تضاد به دیگه تضاد به اتقاطی و امیخترین و جدیترین و واقعیتری این عشق به مزددس میشه این ما سنخ همدان اینها قلبی ترین و روحانی ترین اشخاص هستند و اگر در این صبور باشند و حق این را ادا کنند این نیروها با اشخاص ورثه واردین و روح تهرندزالین اشخاص است خبر دینی اما علمی معرفتی همان بود چون به همین دلیل اون اشخاص هایی که با محاسبات و مصالحات و شرایط و فرمول ها و توافقات قبلی صورت میگیره اصلاً چه سوم مجالی برای عشق پیدا نمی و اینها اصلاً هنگه در بقیقه با ازدواج نمی کنن. با هم یه همه چه بحثا سندگی موکنند برسن ولی چیز به ازدواج برای اصلاً اینکتری فیالیم این بریم رخ چه بحثا روخ نمی کنید برای همینه درست خاتتگاری های سنتی که دوستر بوستر همین شرائق نداشتند که این هم هم که آشنا بشند و با همین یک یک یک و توافقات داشته باشند و معاملات رو قرار داشته باشند ما میبینیم که ازباش های محفظه های و محبتها های عشق های بیشتایی به ازباشه های خلیل اومدهید چما اش، عشق، به زد عشق به چی که تو اصلا نمی دانی چیست اما اگر می این عشق، این ما گفتیم اشک من اساس نیازه به جاوزاندگی و روح هستی مطلقه اشک رسیدنی به خیشتن خیشه بخشت. این توحیدی که ببین خب و از در واقع اشک در ناشویی زادسن الائیست در واقع همون رو به خداست در واقع منطقه انسان معرفت نداده اینو بفهمید ولی اتوماتیک این اشک در واقع که اشک دی دیگر به کسی دیگر است در واقع با اشک رو به خداست در اون تو در مشروعی که متحهند باشه بر اساس تقویات زندگی کنه و اخلاق را شایی باشه بلی به تزیج محنویت دین و معرفت در این رابطه بیدا میشه دوابونش که خدا در این رابطه بیدا میشه این منطوع رابطه است و خوی رابطه سبون شخص قائب رابطه که اصلا علت رابطه بوده یعنی خود خدای آشان رابطه بیدا میشه محنویت محنویت معرفت میدانی اخلاص متعقید باشند در نصلای به همدیگه و به هر بحانه ای عهد نشکنند سیانت نکنند این درناشتی به هفت خودش بیرسید و به سمت حدیثت در حدیثتید ببینید این نیاز گفتیم جمعیه غرفانی و وجودیست که در همه انسان ها هر سپور انسان ها قدران ندارد. و ندارند ولی همچه با که انسان ها در هر همکه تلم و معرفت که باشند احساس می این نیاز به چند صورت، علات غریزی و وجودی و مادی خود میکنه یکی نیاز جنسی است. البته که برای همین هم هستش که عمر اول و اساس صورت فیزیکی ما شیه و روابط جنسی ما به گونه‌ای که از دانش شرعی هم اگر روابط جنسی مختل بشه میذانش خود به خود قانونیم مختل میشه. خب چرا شاید بلکه این خب پس بهتره که این نیاز جنسی با روابط جنسی چون اسواس قریمدی و هستیومادی درناشویی همونی اگه اون باشه درناشویی اگه نباشه نیست این نیاز رو خب دختر که با در خودشون تماما احساس بکنید برهن. حتی سکسم که به نظرین مثل تا این جنبه رابطه زن و معظه هست دارای انداه چیست حقیست و به منظرین برای ولی ما باستین اطلاعات اگه رسیدن خوابه جنسی هم خامه چیه در واقع آن؟ که از تازگی زیادی هم مفید در آموزشی رفتن از تازگی. ولی همینه که مهمترین و واجبترین بخش زندگی دانشجویی. و از بر این واقعیت شده از اینه ما که خود آن است. ولی همین اولتی که دانشجویی ها بدانند که رابطه تجنسی وجود داره که ما بیشتر هست. و که به هر تجنسی به اوتوماسیک از جبرن حلاقه و هم دستور به اگر این حتم درانشن حروساشون به فساد و این حراقه تبایید شده میشن خب بس حق را بده جمیستی هم بر حق ایست و لذت و نیاز غریدی حراقه جنسی. غرید جنسی از از غریده شکم هم قضرت منطقه درابط باز و اگر این قرید در قطیل بیفته شدید تری نظر پارو پدید میاره فرق و نظاری حرکت از آن فدید نمیاره این عذاب روح خودی میاره برای این یک نیازیست بر هر چرا برای که در اون لحظه هماغوشی و رضایت جنسی در اونجا برای لحظهی در فراسوی هماغوشی جسمانی آن روحی که حرکتی در جسولی در چند لحظه دریاد و در و درد میشه برای میش نشه که برای لحظاتی توحید اتفاق می افتید اون به روحانی اتفاق می در همه همه با جنسی اتفاق می افتید ای و این ذات اتفاق، ذات این را بلی جنسی و حق خدا راهی، روحانی و حقیست الهی و ذاتش تماما و در اینجا بتانید ازش اتفاق و در, در, در, در اسطاب چرای مهم و عملی واجب و درشنی که قرار داشت بنابراین درست به همین درزینه به میزانی که دختر و بسرهای جوان این نیاز رو در روابط غیر متحقیدن ها و مشروع میرند اقضا میکنند خوبصویت ها از رسواش کردن هم و بیلیان میشندید و ظاهره می کنند و در حالت اینها چه خیانتی به ذات سرنوشت خودشون می کنند چه خیانتی به هستی جابدانی خودشون می میکند چرا برهین که ین جنبه انسانی رابطه جنسی تعهد عهد ازدواج واوقی هیوانیت انسانه. در واقع کسانی که در رابط آزاد جنسی خودشن ارضا میکنند بعد موجود نمون که مثلا استبداد نمیذار این باخورش میذارند میذارند با این مود امرختری و بدخترین انحرافاتن اینها در حقیقت انسانیت خودشون رو دیگه قانون و نابود کردن و در هیبانیت خودشون مقرب و تواهو نابود میشند مردم در دردن است با که احققی انسان ها که نیوتیسیشن رو در غیر رابطی زناشویی میخواد که انسانیت انسان گفتیم مدنیت نسان روح و معنویت نسان خسیم حاصل اهد لیگران مرده که در جنسی منکی متحفظ بمانند بماندی و مفاق نگو بماندی بیانند نه بنابراین گریز از تن و تنهایی و احساس ناموژی ولی میل چندی من یادی چندی و معنوی ازتباه رویکردی و پیوانی شمونیاویستی و ماش ما هم در واقع فرار از تن خیشه از تنهایی در واقع اصباغ فرار از تنهاییه تنهایی, تنهایی چی این تن. تن خود ای که تو ممکن خوب شب نابو شورای به پس بشه و اینکه اینکه تن ما این تنو ممکن و ما تن ما در از از تنهایی یه طور در این تن در رابطه با روحش رو باشه روحانی میشه یعنی جاویدانه میشه وقتی یعنی که با اینکه ازدواج نمیکنه از روحه هرگز به روح نمی یعنی چه چیزی واه روح الهی تا در اختیار نمیشه کسی که ازدواج میکنه ببین پس در واقع اگر ما میگیم که دینداری که با شن این اساس آزادی های جنسی خودش از کرده اگر به خود به این بده که دارو میره یعنی بشنگی به سمت نابودی و روح میره ولی همین نهایتاً به مرتبه حیمان و یک میمون نمیشه دید در بار جنگوازون نه او تفضیر یک میشه یک بود که بر اساس ازدواج اتمدن شده، صاحب منام منابیات شده و یک مرتبه دو شده آه. ولی در این ها در این مدنیت به قدرته های علمی مطمئنی و سنتی هی رسالایی کسیده به یک قول شده تبکیه به یک موجود خلای شده مطابق موجود خلای اونی بدون روح موجود خلای بدون که خدرتیل در این شیطان بشریتی که به سمت این ازایت خانه در موضوع به سمت دیف شدن و دیوان شدن دارید خب ما ببینیم داریم در اون جوامهی، در اون کشورهایی، در اون که انتباهاش نیز سر گرفته میشه و داره به با سمت انگلاز میره ما میدنیم که چین افراد و جوامهی باوند به سمت دیوانگی دارن میرن دیوانیگی، دیو. جنون، جنایت یعنی روح و این معنی رو, رو بکردی در خودشون نارو <تص> بیر برست که چین افتا باوند در بایستی گفت که این میزانی که زن به فوهر در سمت بی همتایی شخصیتی هم دیگر و منحصر بروفرد بودن هم دیگر رو کشف میکنند و تصدیل این اون را رای یا نجات و تعایید و در بیهرش و, و جاوزاندگی اون میزانی که افتار و اشتراکات دارند و سنگ میکنه، هرکی سنگ میکنه که طرف مقابلش مثل خودش بکنه هم صدیفه ی فکری خودش بکنه. هر کاری که این دوستاری اون این راه راه جهنم میزنه و همون چیزی که تمام رو را جاهل و افرام می علت بخبتی زنجا شوییم چون نیو کنید؟ مثال کنان اجتماعی میزنیم چون نیو کنید؟ امروزه مروضه اصل همسانی افراد و دوها و تکنولوژی و نوم لطاست تکنیلوژی و اثباتات اومده همه افکار شبیه هم درد سریقه های شب ه خونه ها و افزار های شبیه هم تفریاد شبیه هم بازی های شبیه هم به میزانی که بشه هم همسانی و اشتراکات داریم گیره که در فیل تاریخ سابقا نداشته ما شاهدی چی هستیم او جیدی عشد ادابت ها و تا جنگ ها و جنگ ها و جمعه ماست از قلب خانواده از هم زم شوهرهایی بزرگم بیاره به قرد را میرسونم در فیل تاریخ مجموعه این قلب نشوه ه جمع عقیدتی، فرقی، گروهی، همسایی با همسایی، ملت با ملت، مصحب با مصحب دیگر جا هرچی همسان تمیشن و جنون و جنایت هاست که داره روش نکنیم یعنی آقایت بگذار عزیزش در زنانشویی خب ببین؟ بنابراین بیاد کردن، ببین همون مثال چشم همچشمی که میگیم دکتر بدبست کردن دیگه زنانشویی و افراد هست و ملت چون بی اساس قیاس همسان شدن میگه من میخوام مثل دیگری باشم اون چیزی که دیگران من, من اون داشته باشم اما این اساس جنون واجناز و کی میخواد ها انسان رو با قاعده نوبجین کی اساس به جواب و دهیم گفتیم استهای خانوادگی نشوام خواست بنابراین در به میزبانی که چیکو کنم بر اساس تشابهات با ایش که میکنه با خوشطاشت باشه این کاملا واونه و که به سمت بی همتایی و بیشگی منصر و فردی هم دیگر کرد می کنن و هم بیار درک و تفتیق می کنن با جنبه های بی و بیتایی هم دیگر کار میکنن کنن و تفتیق و موافقت می این راییست که به دوستی می به سال می رسه بی همتا گیره در واقع در این راقته خدا, خدا که بدون می شه بی همتایی، سمدیت، عهدیت بلایم یکم در گفتون عهد بعد ما به از رازهای بدبختی و, و, دارید دارید. و خب این موضوع ما می‌بینیم که ظراظ های بد به دل خوبشان مذاهدری دارند. و خوب، امروز ما می‌بینیم ارتباط در دانو مدن که هست و تو می‌دانی که این برابری برای دایدامان داده میشه داره. حالا ما می‌بینیم که دانو شیعه داره، تباهتر و سیاهتر میشه تا جایی که دیکت باشه. اون دیگر تن می‌خواد تا زد باشد. اونا می‌دونند که ما در اوج جنگ فراتن. فقط دان تامل می‌کنند و سعی می‌کنند. فقط مسخره‌ی آزادانه‌ای با خاطر مسائل اقتصادی و سیاسی. از بنابراین این برابری زن و مرد رو داش میگیم یعنی همسر شدن دیگه ضرر واسه این همسری ما می‌بینیم که خودش دیمید. حتی بی‌ذاریه جنسی میشه. زن وار شدن مرد، مرد شدن زن، هر دو تا میشن، دیگه شده مثلا نمردان یعنی چه دمو غیر از ذخیره چی؟ طبیعتاً این خودش از اساسی همجزگرایی و تنچیزی که میتونه خانواده و بزادات مدن بشری نابود کنه ما میتونه که همجزگرایی روشت ترسامه جهانی بدا جرده این حیزتش این برابری های دروغی و این برابری های مادی و سویی و گوزنه برابری انسانها ها با در احضیت ذاتیشونه در خدایه احضیت ذاتیشونه اون بی همساهیشون این ها با هم برابرند برا در خداوصردهشون ها آور رو برد. صدا برابانی که به سم دی بی همسای هم دیگر کردن کن و بی هم دیگر رو کشف می کنند و به هم دیگر کمک می کنند. تا این هویت بی همتا و های مناسب به فرد هستیشون بارز بشه و آشکار بشه و این عناصر بی همتا اینها میتونن این یکی می واقع مشترکه تو بی دی و دوستانه داشته باشند. رشد کنند و اون رابط است جابدانیگی رو خداییت با اون گمسده، پیدا میشه اون گمسده خود خداییت شده من که کنم عنوان یک جنبندی عملی از این دوره که لدی کنی باشی خانواده ها با و نهایت از مدنان چیه؟ بس مشخص شد که جنون تفاهمگری های منطقی و جنون اشترافات گراهی، اشترافات گروهی در تو یو به سم چه خصوصی دارین مثلا این ما تا این در قرآن میگوین که عزت ابطال روابط های طایفه‌سازا هیچیه شرکه ببین این در واقع شرکه پس شرک خداوند نیست وقتی بس شرکی به و تمام تلاشون داری باطل میکنه حتی اون زحمت پوچ میشه و خان خانواده سرشون خراب میشه درست هم این همون سرگیس که میتونید از رو با سری رو